نکته بعدی که مقام معظم رهبری به اون اشاره کردن تبیین شخصیت سردار سرفراز حاج قاسم سلیمانی بود به بعضی از خصائص اخلاقی او اشاره کردن گمان ما این بود که میخواستند به مردم بفهمانند مردم ایران اگر می‌خواهید مملکتتون آباد شود اگر می‌خواهید مملکتتون آباد شود اگر میخواهید به اون جامعه ایدئال خودتون برسید اگر میخواهید به اون جامعه ایدئال خودتون برسید نیروهایی که انتخاب میکنید باید به مانند حاج قاسم باشن افرادی متوازه افرادی شجاع افرادی با تدبیر افرادی که مراعات حدود اسلامی را میکنند، افرادی که همیشه در هر کجا جامعه و نظام مقدس جمهوری اسلامی به آنها نیاز دارند، حاضر میشوند و سربازان و رزمندگان بیمار زن برایشون فرد نمی کند که در مملکت ایران به بجنگند یا در عراق و یا در سوریه و یا در لبنان و یا در یمن و یا اگر لازم باشد حتی در مقابل با رژیم اسرائیل و رژیم سعودی در عربستان سعودی مردم ایران چنین نمایندگانی لائق اونهاست چنین نمایندگانی لائق اونهاست کسانی که درد مردم را نمیفهمند، توجه به درد مردم ندارن فقط با شعار میخوان از خودشان کسی بسازن با میخوان از خودشان کسی بسازن اگر میخواهید به اون جامعه ایدعال خودتون برسید نیروهایی که انتخاب کنید باید به مانند حاج باشند. افرادی متواضع، افرادی شجاع، افرادی با تدبیر، افرادی که مراعات حدود اسلامی را میکنند، مردم ایران چنین نمایندگانی لایق آنهاست.